بسم الله الرحمن الرحیم برام خداوند بی انبوزا مهربان نهایت باره می گویند جد خدا چیزی دیگری را عبادت نکنید بدون شک من از جانب او برای شما بیمدهنده و بشارتدهنده ام و اینکه از پروردگار خود آمرزش بخواهید سپس به او رجوع کنید توبه نمایید تا شما را با وجه شایسته تا موعد معین به من گرداند و به هر صاحب فضل جزای فضیلتش را بدهد و اگر رو برگردانید پس بیگمان بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم بسوی خدا و بازگشت شماست و او بر هر چیز توانه است. آگاه باشید بیشک سینه های خیش را دلا می کنند تا راز خود را از او پنهان نگه دارند. آگاه باشید حتی در وقتی که لباس های خیش می پوشند خداوند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می نمایند می داند. حقا که او به کنه دلها آگاه است. هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر خداست و خداوند گاهی همیشگی و رهایشگاه موقت آن را می داند اینها در کتاب روشن درج است اوست که آسمانها و زمین را در شش روز و عرش او بر آب بود تا شما را بیازماید که کدام یک شما در عمل نیکوتر هستید و چون به ایشان بگویی یقینا بعد از مرگ بر برانگیخته می شوید کافران می این سخن جز سحر یعنی دروغ یا شکار چیزی دیگری نیست و اگر عذاب را از ایشان تا مدت محدود به تعویق اندازیم بگمان می گویند چی چیز این عذاب را باز می دارد آگاه باشه روزی که عذاب به ایشان برسد هرگز از آنها باز داشتن نمی شود و آنچی را مزخرمی کردند ایشان را فرا می گیرد و اگر به انسان از نزد خود رحمتی بچشانیم و سپس آن را از وی بازگیریم بیگمان معیوس و ناسپاس است و اگر ما با او بعض از سختی و مشکلاتی که دیده نعمتها عنایت کنیم بیگمان میگوید همه همۀ ها از من دور شد واقعا او شادمان و خودستا می باشد. جز کسانی که شکیبایی ورزیدند و کارهای شایسته کردند هم این هاویند که برایشان آمرزش و مزد بزرگ ارزانی شده است شاید بخاطرت بیاید که بعضی از آنچه را با تو وحی شده ترک نمایی. و سینات تنگ شود از اینکه میگویند چرا بر او گنجی فرود آوردن نشده یا با او فرشته ای نیامده است خاطر داشته باشی که تو صرف بیمدهنده می باشی و خداوند به هر چیز نگهبان است آیا می گویند قرآن را افتراع کرده است بگو پس ده سوره افتراک شده مانند این سوره ها بیاورید و هر کسی را که می توانید جز خدا برای کمک خیش بخوانید اگر صادق هستید اگر درخواست شما را اجابت نکردن پس بدانید آنچه نازل شده و علم خدا نازل شده است و اینکه که معبود جز او نیست. پس آیا شما مسلمان شدنی هستید؟ کسانی که خواهان زندگی دنیا و زینتیان باشند جزای اعمالشان را کاملا در این دنیا و ایشان میدهیم و ایشان در آن زیانمند ساختن نمیشوند امین هاین که برایشان در آخرت جز آتش نیست و آنچه را در دنیا انجام دادند هبته شد و آنچه کردند باطل است آیا کسی که برای واضح از جانب پروردگارش قرار دارد و از پی آن گواهی از جانب خداوند با وی آید توری که پیش از آن کتاب موسی به حیث پیشوا و رحمتی آمده بود مانند کسی است که از حق کار می کند همین هایند که به قرآن ایمان می آورند و کسی از گروه ها که به آن کافر شد آتش و اوست پس در مورد نزول آن در شبهه مباش بیگمان این کتاب حق است از جانب پروردگاری تو اما بیشتر مردم ایمان نمی آورند و کیست تر از کسی که و خدا دروغی را افترا کرد ایشان در روز قیامت با پروردگاری خیش پیش کرده می و گواهان می گویند این هایند کسانی که با پروردگاری خیش دروغ بستند آگاه باشید لعنت خدا بر ستمگاران است آنانی که مردم را از راه خدا باز می و در آن وارونگی می جویند یعنی آن را نادرست جلوه می و ایشان با آخرت اینها خدا را در زمین عاجز ساختن نمی توانند یعنی از مجازات اعمال خیش فرار کردن نمی توانند و برایشان جز خدا کار ساز و پشتیبانی نیست عذاب برایشان دوچند می شود ایشان توانایی شنیدن حق را نداشتند و آن را دیدن نمی توانستند ایشانند که خود را زیانمند ساختند و آنچه را ایشان افترا کردند از ایشان گم شد یعنی آنها را در خلا گذاشت لاجرم اینها در آخرت از همه زیان کارترند بیگمان آنانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و به پروردگارشان فروتنی کردند هم ایشانند اهل بهشت جاویدانه در انجام می باشند مثال این دو فریق درست همانند کور و کر در برابر بینا و شنواست آیا اینها در مقایسه با یکدیگر دیگر آیا پن نمی گیرند؟ بیگمان ما نوح را به قوم او فرستادیم که به آنها گفت من برای شما بیم بیمدهنده آشکارم بر اینکه جز خدا چیزی دیگر را نپرستید بیگمان من بر شما از عذاب روز دردناک میترسم کلان شویندگان قوم او کافران گفتند ما تو را جز بشر مثل خیش نمی بینیم. کسانی را که از تو پیروی کرده اند در ظاهر رعی جز گروهی از ارازل نمی و برای شما بر خود فضیلت نمی بینیم بلکه شما را دروگو فکر بیکنیم نوح گفت ای قوم من ببینید اگر من از جانب پروردگار خود حجتی داشته باشم و برای من رحمتی از نزده خودش داده باشد که آن رحمت بر شما پوشیده باشد آیا شما را به قبول آن وادار کنیم در حالی که از آن بیزارید؟ و ای قوم من در برابر آن دعوت از شما مال نمی خواهم نیست مزد من مگر بر خدا و من کسانی را که ایمان آورده اند از پیش خود نمی رانم ایشان پروردگار خیش را ملاقات می کنند ولیکن من شما را قوم جاهل می بینم ای قوم من آیا چه کسی مرا در برابر قبط خدا کمک می کند اگر ایشان را از خود برانم آیا پن نمی گیرید؟ و به شما نمی گویم که خزاین خدا نزد من است و نه هم غیب می دانم نمی گویم که من فرشته هم. نمی گویم به کسانی که چشمان شما بر ایشان به حقارت مینگرد خداوند به ایشان هرگز خیر نمی دهد خداوند به آنچه در دل های ایشان می باشد داناتر است اگر من ایشان را از خود برانم آنگاه بیگمان از ستم گاران خواهم بود گفتند ای تو با ما مجادله کردی و با ما بسیار مجادله کردی پس آنچه را با ما وعده کنی بر ما بیاور اگر صادق هستی نو گفت بیگمان آن را خداون بر شما آورد اگر بخواهد و شما این عذاب را مغلوب کننده نیستی اگر خدا بخواهد شما را گمراه بسازد در حالی که من بخواهم شما را نصیحت کنم نیز نصیحت من به شما سودی ندارد او پروردگار شما و به سوی او بازگردانی در می آیا می گویند آن را افترا کرده است بگو اگر من آن را افترا کرده ام پس گناه من بر من است و من از گناهی که کرده اید مبرایم و به نوح شد که هرگز کسی از قوم تو ایمان نمی آورد مگر آنونی که تا اکنون او ایمان آورده اند پس به سبب آن چه می کنند اندوهگین مباش و کشتی را زیر نظر ما و مطابق به وحی ما بساز و بعد از این در مورد ستمگاران با من سخن مگو یعنی شفاعتشان را مکن بیگمان ایشان غرق شدنی هستند نوح کشتی را می و هر باری که گروهی از کلانشوندگان قوم او بر آن گذاشتند او را تمسخور می کردند نوح گفت شما حالا ما را تمسخور می کنید بگمان ما هم شما را تمسخور می کنیم همان که او کنون شما ما را تمسخور می کنید بزودی خواهید دانست بر کدام کس عذاب رسوا کنندهی خواهد آمد و عذاب چی کسی همیشه خواهد بود وزع به همین منوال دوام کرد تا اینکه فرمان ما رسید و تنور جوشید به گفتیم از هر جنس دو تن نرماده و نیز از خاندانت جز کسی که بر او حکم عذاب قبلا صادر شده است و همین مسلمانان را در کشتی حمل کن و در این هنگام با او ایمان نیاورده بودن مگر عدۀ معدودی نوه گفت در کشتی سوار شوید، به نام خداست ترکت آن و لنگر انداختن آن حقاک پروردگار من او و مهربان است و کشتیشان را در امواج کوهپیکر پیکر می بود و نوح پسرش را که در گوشه بود صدا زد ای پسرکم با ما سوار شو و با کفار ما باش. پسری نوح گفت بزودی به زودی به کوهی پنامه برم که مرا از آب نگه دارد نوح گفت امروز از فرمان خدا نگهدارنده نیست، مگر کسی که خدا او را ببخشد و میان ایشان موجی حیل شد و او از جمله غرق شدگان بود. و از جانب خدا گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان باران خود را باز دار آب فرو نشست کار تمام شد و کشتی بر کوه جودی قرار گرفت و گفته شد دور باد مردم ستمگر از مرحمت خداوند و نوح پروردگار خود را ندا کرد ای پروردگار من بیگمان پسر من از اهل من است و وعده تو حق است و تو بهترین حکم کنندگان هستی خداوند گفت ای بدون شک او از اهل تو نیست زیرا او دارای عملی ناشایسته است و از چیزی که به آن علمی نداری از من مپرس واقعا که من ترا پند میدهم تا مبادا از جاهلان باشی نوح گفت پروردگار من من بیگمان به تو پنامی برم از آن که از تو چیزی را میپرسم که به آن علمی ندارم و اگر مرا نیا و و برمن رحمت نفرمایی بیگمان از زیار کاران می باشم از جانب خدا گفته شد اینو با سلامتی و برکت هایی که از جانب ما شامل حال تو و گروه های امراهی تو شده است از کشتی فرو و اومدهای نیز که با زودی ایشان را برای یک دوره محدود بهرمند می گردانید سپس از جانب ما و ایشان عذاب دردناک می رسد اینها از خبرهای غیب است که آن را تو ر پیش از این نه تو و نه هم قوم تو اینها را می دانستن. پس صبر و استقامت کن بگمان آقبت نیکو از آن پرهیزگاران است و به قام عاد برادرشان هود را فرستادیم او گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید که برای شما جز او معبودی نیست و در اینکه که به خدا شریف می آورید نیستید مگر افترا کنندگان ای قوم من در برابر این دعوت از شما مزد نمی طلبم مزد من نیست جز بر آنکه مرا فریده است آیا نمی فهمید؟ و ای قوم من از پروردگار خدا آموزش بخواهید سپاس با او رو کنید یعنی توبه نمایید تا بر شما از آسمان باران را پیوسته بفرستد و نیروی بر نیروی شما بیفزاید و گنهکارانه از حق رو گردان گفتن ای هود به ما حجتی نیاوردی و ما معبودان خود را به گفته تو ترک گفتنی میایستیم و نه هم به تو ایمان آرنده ای ما نمی مگر این را که شاید بعضی از معبودان ما به عقل تو زیانی رسانده اند گفت من خدا را گواه می آورم و شما گواه باشید که من واقعا از آنچه شما شک می آورید بیزارم به جز وی پس همه شما در حق من دستیسه بیچید سپس به من محلت ندهید بیگمان من با خدای پروردگار خود و پروردگار شما توکل کردم هیچ جانداری نیست مگر آنکه خدا از موی پیشانی آن می گیرد. یعنی بر آن تسلط کامل دارد بیگمان پروردگار من بر راه راست است اگر روی برگردانی یعنی نافرمونی کنید پس به گمان پیامی را که با آن به سوی شما فرستاده شدم ابلاغ کردم و پروردگار من قوم دیگری را جز شما جانشین میسازد. و شما به او هیچ ضرری رساندن نمی توانید حقا که پروردگار من به هر چیز نگهبان است و چون فرمان ما فرار اسید هود و آنانی را که با او ایمان آوردند به مرحمتی از جانب خود نجات دادید و ایشان را از عذاب شدید رهانی دید و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را تکذیب و پیامبران او را نافرمانی کردند و فرمان هر سرکش ست زکاری را پیروی نمودند و در این دنیا ایشان را دنبال کرد یعنی از ایشان نام ننگین ماند و در آخرت نیست بگمان عاد به پروردگار خود کافر شدند آگاه باشید دور عاد قوم هود از رحمت الهی و به قوم سمود برادرشان صالح را فرستادیم او گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید برای شما جز او معبودی نیست او شما را زمین آفرید و به آبادانی آن گماشت لذا از او آمرزش بخواهید سپس با او رجوع کنید بیگمان پروردگار من نزدیک و اجابت کنید ای دعا هست گفتند ای صالح واکن تو قبلا در میان ما مایه امید بودی آیا تو ما را از پرستش آنچه پدران ما می پرستیدن منع و ما بیگمان به آنچه تو ما را به آن می در شک و تردید هستیم صالح گفت ای قوم من و من بگویید اگر من از جانب پروردگار خود دلیل آشکاری داشته باشم و مرا از نزد خود رحمتی داده باشد اگر خدا را نافرمانی کنم کی مرا در برابر خدا یاری میدهد پس شما جز نقصان و من چیزی زیاده نمی کنید ای قوم من این ناقض جانب خدا برای شما نشانه است پس آن را بگذارید تا آزادانه در زمین خدا بچرد و به آن ضرر مرسانید در غیر آن به زودی عذاب شما را گرفتار می کند ایشان آن شطر را پی کردند پس صالح گفت در های خود سه روز از زندگی بهرمند باشید این وعده است در غیر قابل تکذیب پس چون فرمان ما فرار صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند به مرحمت از جانب خود نجات دادیم و ایشان را از رسوایی آن روز واری هانید حقا که پروردگار تو هم اوست قوی و صاحب قدرت منی و ستمگاران را آواز مهیب فرو گرفت پس در خانه های خود چون مردگانی بر روی افتاده ای گردیدند که گویی هرگز در آن سرزمین زندگی نداشتند آگاه باشید واکن سمود به پروردیگار خود کفر ورزیدند هان دور باد سمود از رحمت خداوند به تحقیق که فرستادگان ما به ابراهیم بشارتی آوردند گفتند سلام بر تو ابراهیم گفت و بر شما نیز سلام پس طول نکشید که برایشان گرساله بیدیانی آورد ورد و چون دید دست آنها به تام نمی رسد، یعنی از آن نمیخورند. خورند رویه ایشان را ناشنا پنداشت و از ایشان احساس ترس کرد گفتن مترس بیگمان ما به سوی قوم لود فرستاده شده ایم. زن ابراهیم که در آنجا ایستاده بود خندید پس ما او را به پیدایش اسحاق و از پای اسحاق به پیدایش یعقوب بشارت دادیم آن زن گفت وای بر من آیا در حالی که من پیرزن باز هم فرزندی خواهم آورد؟ و این شوهر من مرد بس است. است واقعا این چیزی عجیب است فرستادگان گفتند آیا از قدرت خدا تعجب می کنی؟ رحمت خدا و برکات او شامل حال شما خانواده است که خدا من ستوده و بزرگ است چون از ابراهیم ترس دور شد و این مجد به او رسید با ما در بارۀ قوم لوت مجادله می کرد آری ابراهیم بردهبار دلسوز و خداجو بود خداوند به او گفت ابراهیم از این کار صرف نظر کن واکت این است که فرمان پروردگارت صادر شده و بیگمان به ایشان عذابی که برگشت ندارد رسیده نیست انگامی که فرسادگان ما نزد لوت آمدند ناراحت و دلتنگ گردید از ترس اینکه مبادا نتواند ایشان را حفاظت کند و گفت این روز سختی است و قوم او با سوی او یورشکنان آمدند و ایشان قبلا کارهای زشت می کردند. لوت گفت ای قوم من اینها دختران من هستند ایشان برای شما اگر نکاهشان کنید پاکی زترند بنابراین از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانان من رسوا مکنید آیا در میان شما مرد رشیدی وجود ندارد؟ ایشان گفتند واقعا تو میدانی که با دختران تو حق و میل ندارید و تو خوب میدانی که ما چی میخواهیم گفت ای کاش در برابر شما قدرتی می داشتن یا بعد که گاه مستحکم پناه برده می توانستن فرستادگان گفتند ای لوت بیگمان ما فرستادگان پروردگاری تو هستی ایشان هرگز به تو دست یافتن نمی توانند پس در پاسی از شب خانواده خیش را از این شهر ببر و هیچکس از شما به پشت سر خود نگاه نکند مگر همسرت که به او نیز همان چیزی رسیده نیست که به ایشان می رسد بگمان موهد ایشان صبح است آیا صبح نزدیک نیست؟ چون فرمان ما فرا رسید آن خانه ها را زیر و رو کردیم و بر ایشان از سنگ گل یعنی گل پخته پی در پی بارانیدیم سنگ هایی که در نزد پروردگارت نشان کرده شده بود و این از گاران دور نیست و به سوی قوم مدین برادر ایشان شعیب را فرستادیم او گفت ای قوم من خدا را پرستش کنید شما را جز او معبودی نیست و پیمانه و وزن را کم نکنید بیگمان من شما را به خیر یعنی در آشودگی می بینم و بیگمان به شما اعذاب روز فراگیر را خوف دارم و ای قوم من پیمانه و وزن را به انصاف ادا کنید به مردم هیچ چیزشان را کم ندهید و در زمین به فسادکاری دست نیازید آنچه خدا با شما بعد از ایفای پیمانه و وزن با کی گذارد برای شما بهتر است اگر مؤمن هستید و من بر شما نگهبان نیستم گفتند ای شعید آیا نماز تو تو را دستور میدهد که آنچرا خدران ما میپرستیدن ترک گوییم یا در اموال خود توری که بخواهیم تصرف نکنیم بگمان تو انسان بردبار و می باشی. گفت ای قوم من آیا دیدید اگر من از جانب پروردگار خود دلیل یا داشته باشم و او مرا روزی خوبی از جانب خود داده باشد آیا باز هم از فرمان او تخلف ورزم؟ من اراده ندارم که با شما مخالفت کنم یعنی نمیخواهم مرتکب عملی شوم در چیزی که شما را از آن من امین من تا حدی که بتوانم جز اصلاح نمیخواهم و توفیق من جز به مدد خدا میسر نیست بر وای توکل کردم و به او رجوع می کنم ای قوم من ما دشمنی شما با من شما را نیز بسر نوشت قوم نوح یا قومی هود یا قوم صالح دچار سازد و قوم لوت از شما دور نیست و از پروردگار خدا مرزش بخواهید سپس به سوی او به توبه رو جو کنید حقا که پروردگار من مهربان و دوست است گفتند ای شوید بسا از چیزهایی را که میگویی نمیفهمیم و بیگمان تو را در میان خود ضعیف میبینیم و اگر بخاطر قبیله تو نمی بود بیگمان تو را سنسار می کردیم و تو پیش ما زتی نداری. شعیب گفت ای قوم من آیا قبیله من نزد شما از خدا عزیزتر است در حالی که فرمان خدا را پشت سر خیشان انداخته اید بیگمان با آنچه می کنید پروردگار من احاطه دارد و ای قوم من هرچی میتوانید بکنید من هم آنچه میتوانم انجام خواهم داد و زودی خواهید دانست عذاب رسوا کننده سر وقتی کی می آید و کی درو گوست انتظار بکشید بگمان من نیز با شما منتظرم و چون فرمانی ما رسید شعیب و کسانی را که با او ایمان آوردند به رحمتی از نزد خود نجات دادیم. و ستمگاران را آواز مهیب فرا گرفت پس در خانه های خود مردگانی به روی افتاده گردیدند گویی هرگز در آنجا زندگی نداشتند آگاه باش دور باد مدین از رحمت خدا چونان که قوم سمود دور شدند بیگمان ما موسی را با آیات خود و با حجت آشکار فرستادیم به سوی فرعون و کلانشوندگان قوم او ولی آنها فرمان فرعون را پیروی کردند در حالی که فرمان فرعون مایه رهیابی نبود او در روز قیامت جلورو قوم خود می شود و ایشان را در آن گرمی سوزان ایوض آنکه به آبگاه ببرد وارد آتش می کند و چی بد جایز دوزخ که به آن وارد ساخته می شود ایشان در این جهان و هم در روز قیامت با لعنت تعقیب میشوند و چی بد عطیه است که به ایشان داده می این از احوال شهرهاست که برای تو بازگو می نمائیم که بعضی هنوز برپایند و بعضی دروشده یعنی از بین رفته ما به آنها ستم نکردیم بلکه خودشان برخیشتن ستم کردند چون امر پروردگاری تو رسید آن معبودانی که جز خدا و ایشان نیایش می از آنها دفاع نتوانستند. و به ایشان جز حلاکت نیفزودند و چنین است گرفتار کردن پروردگار تو چون مردم شهرها را گرفتار کند و ایشان ستمگار باشند حقاک گرفتار کردن او در ناکو شدید است بیگمان در این سخن نشانه است برای کسی که از اعزاب آخرت یعنی روز قیامت بترسد. این روز است که در آن همه مردم جمع می شوند و روزی است که همه در آن حضور دارند ما آن را به تأخیر نمی مگر تا زمانی مقرر شده روزی که قیامت فرارست هیچ کس جز به اجازه او سخند نمی گوید بعضی از ایشان بدبختند و بعضی هم سعادتمند پس کسانی که بدبخت شدند در آتش می باشند در آنجا برایشان فریاد شدید و ناله زار است تا آسمان ها و زمین پاور جاست در آن آتش همیشه سر میبرند مگر آنچه پروردگاری تو بخواهد حقا که پروردگاری تو هر چیزی را که بخواهد انجام داده نیست و اما آنانی که سعادتمند شدند در بهشت باشند و تا آسمان ها و زمین پاور جاست در آنجا جاودانه سر میبرند مگر آنچه پروردگارت بخواهد بخشش بلا این پس در مورد آنچه ایشان می پرستند شبههی به خود راه مدی ایشان نمی پرستند مگر به گونهی که پیش از این پدران پرستش می کردند و بیگمان ما نصیب ایشان را بدون کم و کاستی می دهیم حقا که به موسا کتاب یعنی تورات را دادیم پس در آن اختلاف به عمل آمد و اگر قبلا از جانب پروردگاری تو حکم صادر نمی شد بگمان در میانشان داوری صورت می دیرفت. و واقعا ایشان در مورد آن در شک آمیخته با بدگمانی هست بیگمان پروردگارت به همه مردم جزای کامل اعمالشان را می دهد. حقا که او به آنچه چه می آگاه است پس به همان گونهی که معمور شدی سابق قدم باش هم تو هم آنهایی که با تو به خدا رو آورده و سرکشی مکنید حقا که او به آنچه میکنید بیناست و بسیتمگاران میل نورزید یعنی شان را تک گاه خود نسازید زیرا با این کار آتش شما را میگیرد و برای شما جز خدا حامیان نیست و در این حال به شما کمک نمیشوند و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار بیگمان حسنات سیعات را می زداید این پندیست به مردم پند نیوش و صبر کن حقی که خداوند مزد نیکوکاران را ضاععع نمی کند پس چرا در قرنهای پیش از شما مردم خیرمندی نبودند که از گسترش فساد در روی زمین جلوگیری می مگر تعداد قلیلی از ایشان که آنها را نجات دادید و ستمگاران برای رفتن که غرق تن شدند شدن و گنهکار بودن و چنین نیست که پروردگارت ها را به ستم نابود سازد در حالی که اهل آن در صدد اصلاح باشد و اگر پروردگارت می مردم را امت واحد می ولی ایشان هم در اختلافند جز کسانی که خداوند بر آنها رحم کند و به همین مقصد بیشان را فرید و حکم پروردگارت قطعیت یافت که دوزخ را از مجموعه از جن و انس پر می کنیم هر چیزی را که ما به تو از احوال پیانبران بیان, بیان می کنیم با آن قلبت را قوت می بخشید و در این داستانها برای تو سخنی حق آمده است و پندی و یاد بودی برای مؤمنان و به آنهایی که ایمان نمیارند بگو هرچی میتوانید بکنید ما نیز آنچه میتوانیم انجام خواهیم داد انتظار بکشید ما نیز منتظریم. اصرار غیب آسمانها و زمین از آن خداست و همه کارها به او ارجاع میشوند پس او را پرستش کن و بر او توکل نما پاس آنچه می کنید پروردگارت بی خبر نیست